بسم الله الرحمن الرحیم باب ربا باب ربا جا انسو بتحریم ربا نقدا و نسان نص وارد شده به حرمت ربا چن نقدی چه وامی خب ربا بردونه ای فازل و نسی ای رضای فازل اونیه که شما یک کیلو مثلا در مقابل یک کیلو دویست کرم یک کیلو بیشتر خلاصه میگیری از طرف همونجا نقدی اینو میگن ربای فضل اضافه گرفتن فقط یه ربای هست به شکل نسیه هست شکل تأخیر و مدت داره که شما یک کیلو رو از طرف الان میگیرید بهش میدید بعد از مدتی بعد از دو روز بعد از یک ماه بعد از زمه ازش یک کیلو مثلا نصفی ازش میگرید إن شخص نسيئة. بس ناس وارد شده هم در قرآن الكريم وهم در روايات صحيح. ولتحريمه في ستة أصناف إلتان. وبراي حرام بودانش درشيش شيء دو إلت وجود داره. خب إن جملة مترزيرهم بخنام والتحريمه في ستة تي أسلام الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح إلا تان وبراي حرام بودن الربا در سنف سينف كي ابارتن والششتن تالا نقره جاندوم جو خورما نمك إلا تان دو إلا تو جود داري ببنيد ظاهریه داود ظاهری ابن حزم ظاهری معتقدند هر چیزی که در نص ذکر شده درش ربا هست ذکر نشده درش ربای وجود ندارد مثلا این شیش چیزی که خوندیم گندم بود جو بود خرما بود نمک بود و طلا و نقره در اینا ربا وجود داره شما نمیتونی یک کیلو تلا رو در مقابل کیلو و یک و نیم کیلو طلا مثلا بفروشی چون با هم مساوی نیستند این درش ربا هست شما نمیتونی یک کیلو گندم رو در مقابل دو کیلو گندم بفروشی این درش ربا هست اما در برند چی؟ در لوبیا چی؟ در عدس چی؟ آیا واقعا ربا وجود داره یا نه؟ ظاهری میگن نه اگر میبود دیم ذکر میکرد جمهور فقها ها میگند وجود داره یعنی ربا مختص این شش چیز نیست بلکه در چیزهای دیگه هم وجود داره خوب چیزهای دیگه که در نهز ذکر نشدند بعد از راه قیاس ثابت بشن. در قیاس رکنی وجود داره به نام علت مثلا آدامسی وجود داره در قرن ما مسکلنده هست ولی این آدامس ذکر نشده در نس. به مثال میگم اینو. خب فقیه میاد میگه شراب حرام بوده به علت مسکلندگی همون علت در این چیز وجود داره پس حکم واحدی میگیرند. فوق های دیگر میگند در چیزای دیگه وجود داره برای اینکه برای اینکه ثابتش کنند راه اول اینه که باید علت اون چیزایی رو که در نس اومده رو پیدا بکنند آقا علتی که در گندم ربا وجود داره چیه؟ یکی میگه چون خوردنیه پس میگه برنج خوردنیه در برنج هم ربا پیش میاد در برنج هم خوردنیه یکی میگه قوته، گندم قوته، برنج هم قوته، پس در برنج هم ربا پیش میاد. یکی میگه نه چون گندم کیلی بوده، با کیل فروخته میشده، درش ربا بوده. الان همون چیزایی که با کیل فروخته میشند، عرف اونها رو با کیل می میفروشه، درشون ربا وجود داره. یکی میگه چون خوردنی بوده و با کل و پیمانه و وزن فروخته می شده مثلا در گندم به این علت بوده پس در نتیجه در برنج وجود داره خب در هر صورت در هر صورت این بحث دوباره تکرار میشه بحث روی این بود که در همین ابتدای بحث امام شافعی در این کتاب امام ماوردی اومده که برای حرام بودن شش سرف دو علت وجود داره چرا میگه دو علت به خاطر اینکه اگر این دو علت در چیزای دیگه یافت بشن اونا هم درشون روا پیش میاد خب علت طلا و نقره فرم میکنه با علت اون چهار چیز دیگه در نزد تمام فقه ولی در این که علت در طلا و نقره چی هست در اون چهار تا چیز چی هست نظر فقه های بزرگوار یکی نیست به نمونه اول میخوریم نظریه شوافر کتابشون دمه دست هست احداهما یکی از اون به علت فی الذهب والوارق لکونهما جنس الاسمان غالبا. میگه علت در طلا و نقره است که سمن هستند غالبا جنس سمن هستند یعنی طلاع و نقره هستند که به عنوان سمن پرداخت میشند. شما اونو به عنوان سمن موقعی خرید و فروش میکنی کالا میخرید اونو به عنوان سمن پرداخت میکنی. پس شد سمنیت در طلاع و نقره. فلا یجوزو به اوحده ما به جنسی مضروبا و مکسورا الا بشارطه پس جایز نیست فروش یکی از این دوتا به هم جنسش یعنی طلا طلا نقره به نقره چه مظوروب باشه زده شده باشه شکل تا نقد در اومده باشه چه مقصور باشه شکسته شده باشه مگر به دو شررتح هم تمامما شرط اولیننی که مثل باشد یعنی یک کیلو در مقابل یک کیلو دو کیلو در مقابل دو کیلو، سه کیلو در مقابل 3 کیلو یک نیم کیلو در مقابل یکیم کیلو و حصله بين هم ما تفاضول و انقل حرون اگر تفازل در شول باشه. یعنی طرف یک کیلورو بده در مقابل دو کیلو، یک کیلورو بده در مقابل یک کیلو دویس کرم حرام هست این کار و انقل اگرچه که تفازل کم هم باشه. بس سرت اول در اجناس ریوی اینه که تاصل باشه همزن رو هم اندازه باشه وثانی التقاوز شرط دوم قبض کردن قبل از افتراقی قبل از این که در اون معامله از هم جدا بشند باید قبض بشند اون طلای اینو و این تلای اونو تحویل بگیرن قبض مکنند فا این تاخر قبض احدهما فسد اگر قبض یکی از این دوتا به تاخیر وفتاد معامل باطل فسده خب پس معامله طلا به طلا و نقره به نقره شرطش اینه که یک هم اندازه باشند دو قبض قبض هر دو طرف قبل از جدایی انجام بگیره اما اگر طلا در مقابل نقره بود یا نقره در مقابل طلا در جمله بعدی مشخصش میکنه و یجوز بیع احدهما بالاخر متفاضلا و متماثلا اذا تقابظاه قبل الافتراق وجائز از فروش یکی از این دو تا به دیگری یعنی طلا در مقابل نقره و نقره در مقابل طلا متفاضلا متفاضلا یعنی یکی بیشتر باشه دیگری کمتر یک کیلو نقره در مقابل نیم کیلو طلا این جایزه هم متفاضلا جایزه هم متواصلا ولی اذا تقابضه قبل الافتراق تقابض اینجا شرطه تقابض شرطه یعنی باید دست به دست باشه معامله دست به دست باشه فا این القبض و فسد اگر قبض به تأخیر افتاد معامل فاسده خب این واضح شد اون فقه های مثل ظاهریه میگند قیاس جائز نیست خلاص میگن همون شیش چیزی که در حدیث ذکر شده درش ربا پیش میاد و در بقیه چیزها پیش نمیاد. ولی میمونه فقه دیگر که جمهور باشند مخصوصا اونایی که علت حرام بودن طلا و نقره رو سمن بودن میدونند خب حالا سمن ما که پرداختش میکنیم موقع که مغازه ها جنس میخریم چه هست؟ پول هست بالا. آیا در پول ربا هست یا نیست آیا میشه هزار تومن رو در مقابل دو هزار تومن داد یا نه؟ این سؤال اساسی است که اینجا مطرح میشه و پاسخ،, پاسخ داده خواهد شد اگر ما از اون دسته از فقه هستیم که قیاس و قبول نداریم معتقدیم هر چیزی در نس ذکر شده درش ربا میاد که پاسخ اینه که نه در پول دیگه ربای پیش نمیاد اما اگر قیاس و قبول داریم میگیم ربا مختص اون شش چیز نیست اینجا بیایم ببینیم علت حرام بودن علت وجود ربا علت اینکه ربا در طلا نقر حرام بوده چی بوده اینو باید بررسی کنیم طبق قول اون فقه هایی که ربا رو در تلان سمن بودن می دونستند مثل مثلا ابن تیمیه که میگه مطلق سمن بودنه علت خب خلاص در پول ربا هست تمام شد طبق نظریه اون فقه هایی که می علت علت ربا اینه که نقد بودن به اضافه از جنس طلاو نقره بودنه هم علت در طلاو نقره یکی اینی که از جنس طلاو نقره هست این که نقد بودند، سمن بودند. طبق نظر اونا ماهیت پول باید بررسی بشه که این پول چی هست و چی نیست اگر ما قیاسش بگیریم و پولو براش پشتوانه قائل نشیم در این صورت درش ربا نیست چون پول کاغذه درست سمنه ولی کاغذه از جنس طلا و نقره نیست طبق این نظریه درش ربا پیش نمیاد اما اگر نمید ما پولو در واقع سندی برای طلا بدونیم یا سندی برای طلاهایی که نزد دولت به عنوان دوین حسن بدونیم اون موقع طبق این نظر هم درش روا پیش میاد و اگر نه ما علت در طلا و نقره اگر ما علت در طلا و نقره مثل احناف وزن بدونیم کون طلا و نقره وزنی بوده اندرشون روا پیش اومده و برای کاغذ ارزش ذاتی قائل نشید و برای کاغذ علت الربا در پولو خود ارزش ذاتی پول بدونیم اون موقع درش پیش نمیاد چون پول وزنی نیست اما چه زمانی در پول ربا پیش میاد زمانی که ما اینو سند دین حواله دین حساب کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه شخص در واقع دارایی حقیقیش است که در نزد دولت وجود داره در نزد بانک مرکزی وجود داره و این کاغذ سندونه در این صورت میشه بهش گفت ربا وجود داره ولی یک مسئله اینجا پیش میاد اون چه هست اون این هست که آیا واقعا ما هنگام خرید عملا البته اون ادعا بماند سر جاش عملا واقعا این چیز رعایت را آیت می یعنی زمانی که من یک موبایل رو میخرم اون لحظه ارزش اون پول با طلا واقعا میسنجم، فرضا من موبایل خریدم 100 هزار قیمت ط اون روز هست یک گرم طلا 100 هزار هنگام فروش هنگام فروشش باز هم این مسئله رو در نظر میگیرم یا نه که صد هزار آه واقعا باز هم ارزش همون یک گرم هست یا نه الان صد هزار شده نیم گرم این رو الان جلوتر توضیح خواهم داد بیاییم برگردیم در پول رواه هست یا نه باید ماهیتش دونسته بشه اگر ما میگیم که پول سند و حواله دین هست خب درش ربا پیش میاد ولی مطلقا نه آنطور که گفته میشه بلکه ما ببینیم که آیا واقعا عملا در بحث بازار این مسئله پیش میاد یا نه مثلا من شخصی رو دادم صد هزار که عرضشش بوده یک گرم تلا بعد از دو سال بعد از دو سال من میتونم ازش صد و ده هزار بگیرم یا نه اگر ما عملا میگیم پشتوانش تلا هست ما بیاییم دو سال بعد بسنجیم که یک گرم تلا آی واقعا همون صد هزار هست یا نیست اگر 100 هزار بود اینجا دیگه جائز نیست که من بیام 102 هزار بیارم. ولی اگر ارزش پول افتاده بود اون روز یعنی 100 هزار من میشه نیم گرم تلا. آیا من میتونم شخصو اندازه پول بگیرم که به اندازه یک گرم تلا بشه؟ واقعیت و منطقی و اقتصاد اینو میگه که بله. چرا؟ چون ارزشش یک گرم طلا اونصد هزار بود امروز فرزن دویست هزار تا دویست هزار گرفتن موردی نمیتونه داشته باشه. این ما داریم ادام میکنیم که این پول اگر درش ربا هست به خاطرین که پشتوارش طلاه. اگر بگیم به خاطر ارزش ذاتی که درش, درش ربا پیش نمیاد چرا طبق اکثر فوق ها چون کاغذ نه از جنس طلا نقره وزنی هست به اون شکل اگر بگیم که به خاطر اینه که، پشتوانش طلا هست اون موقع مشکلی نیست عملا بیایم همین کار رو انجام بدیم در بازار. چون خیلی از تجار دیگه شکست خوردن پس بحث به این شکل جمع میکنیم که طلاح و نقره پول اگر بگیم ارزش ذاتی داره طبق قول اکثر فقها ها درش ربا پیش نمیاد چون درست سمنه اولایی که گفتند علت ربا در طلا نقره مطلق بودن ثمن ابن تمیه طبق قول اونا پیش میاد چون کاغذ سمنه ولی اونایی که گفتن تا سمن باشه و از جنس طلا و نقره باشه طبق قول اونا پیش نمیاد اونایی که گفتن علت حرمت ربا در طلا و نقره وزن بودن, بودن بوده مثل احلاف طبق قول اونا پیش نمیاد اگر ما بگیم کاغذ ارزش ذاتی داشته اگر بگیم نه پشتوانش طلا و دینار هست اون موقع مشکلی نیست این عملا تو بازار همین کار رو بکنیم چرا توجار شکست بخونن چرا مردم ضرر بکنن اصلا علت حرمت ربا همینه که پول بی خود گرفتن از طرفه پول بی مورد گرفتنه سود بی مورد گرفتنه لذا متاسفانه ادعا میشه که چون پشتوانه پول مثلا دینا رو طلا و نقره هست به خاطر این در ش پیش میاد. ولی عملا در بازار این چیز متاسفانه عملی عملی نمیشه. موقع که من میام شخصو در سال مثلا ۸ تا پ میدم که پ گرم طلا بوده الان اجازه ندارم تق قول بزرگان که مثلا ۶ هزار ش گیرم ده سال بعد ولی ده سال بعد 200 هزار حتی یک گرم طلا نمیشه یک گرم تلای 12 یار مثلا الان در سال نوادنلوه ضرورت 30 نوادنلوه شده یک میلیون تو من یک گرم تلایی 12 یار خوب اگر واقعا پشتوانی کاغذ تلاس که من میگم که درش رباب پیش میاد اون موقع پول ام من میشودن 5 گرم الان پول من حتی یک گرم نمیشه چرا من اجازه ندارم به اندازی ازش پول بگیرم که یک گرم بشه اگر واقعا پشتوانش تلعه باید این حق را داشته باشم پس بیایم بگوییم که پول کاغذی رو نمیشه قیاس گرفت از دینار و درهم رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. زیرا دینار و درهم ارزش ذاتی داشتند و کاغذ ندارند اگر واقعا کاغذ ارزش ذاتی داشت چرا در بحث زکات موقعی که شما میخواید سالانه مردم از میپرسند زکات پول چقدره اونو میاد تبقیه دینار رو درهم حساب میکنید میگید مثلا 85 گرم طلا قیمتش امسال چنده اگر 90 میلیون میگید از 90 میلیون پس زکات میاد کمتر از اون دیگه پولش زکات نداره ها؟ چون که میگید پول ارزش ذاتی ندارد ارزشش طلاق و نقره هست چرا در قسمت معاملات ما این کار نکنیم منی که مثلا ده سال پیش پولی رو دادم به آقا وام که اون موقع اون پول من معادل 85 گرم بود زکات داشت الان بعد از ده سال که میخوام پول ما ازش بگیرم پول من زکات نداره چرا؟ چون قیمت تلا و نغره رفته بالا پول من مونده پایین این یک مسئله خیلی بزرگ است که درش متاسفانه دقت نشده ما همان که در قسمت زکات پولو میام طبق طلا میسنجیم و نقره در قسمت بحث ارزش داشتنش همین کارو بکنیم تا خیلی ها شکست نخورند اون علت ربا اتفاقا داره برعکسش اجرا میشه علت ربا اینه که من اضافه نگیرم من موقع ایک طرف دارم صد هزار تومن که بوده یک گرم الان ازش میگیرم صد هزار تومن که یک میلیون تومن شده یک گرم خب برعکسش آی پیشنه اومد در ربا شما یک کیلو رو میدی در مقابل دو کیلو طرف زرر میکنه اینجا شما یک کیلو رو دادی در مقابل نیم کیلو شما زرر کردی باز هم ربا پیش اومد برعکسش واقعیت رو میگم یعنی موقع ما بیان پول و عملی بسندیم پس از دو حالت خارج نیست یا این که ما بگوییم پول ارزش ذاتی نداره سند و حواله دینی هست که در نزد دولت هست یا دولت زمانت ارزشش رو کرده در هر صورت یا بگویم ارزش ذاتی داره اگر ارزش ذاتی داره خب اون موقع طبق قول خیلی از فقها درشت ریبا پیش نمیاد اگر بگویم که حواله دین هست پس باید به روز رسانیش کنیم یعنی موقع من شما موقع برید ارزش طلا رو در اینترنت بسنجید از سال 57 تا الان که 1400 یک سکه طلاق اون موقع زیر صد هزار تومن بوده الان ده میلیون تومن است. اگر ما میگیم واقعا سند و حواله تلاست پول کاغذی پس باید عملا طبق اونو بسنجیم موقعی که یک شخصی ده سال پیش اومده پول گرفته از طرف ده هز... هزار تومن در سال 1400 زمانی درش روا پیش میاد که طبق ارزش طلا و نقره از شخص بیشتر گرفته بشه ارزش سنجی بشه ده سال پیش یک گرم بوده مثلا سد هزار الان پولی رو از طرف بگیره که یک گرم ارزش داره اگر بیشتر از یک گرم ارزش داشت در اون صورت من میگم که در شرباز و اگر نه نه این نظریه هست که روش مطالعه شده و واقعا موقعی که انسان میاد ماهیت پول رو در نظر میگیره به خوبی به این پی میبره پول یا ارزش ذاتی داره یا پشتوانه و سند چیزی دیگه است. اگر ارزش ذاتی داره پس چرا ما در زکات اینو رایت نمی در زکات ما چرا همیشه نصاب رو در پول میشه تغییر میدیم؟ ده سال پول پیش بود مثلا از ده میلون تومن ها؟ اون موقع مثلا 85 گرم بود ده میلیون تومن ما از ده میلیون زکات میدادیم الان که 85 گرم شده 90 میلیون زکات پول شده از 90 میلیون. پس بدون که پول ارزش ذاتی نداره اگر داره ما این حق نداریم که نصاب شده در زکات تغییر بدیم اگر نداره و طلا و نقره هست در بازار عملی هم این کار رو بکنیم. چرا ما ادعا میکنیم که پشتوانش طلا و نقره فلان چیز دیگر هست اما در بازار عملی نمیشه. امروز من باشیم با پول کاغذی نیخرم. هزار میخرم فردا روز هم با همین 100 هزار اضافه بگیرن. نمیتونم دو هزار بگیرم چرا؟ چون فقط در اسم تغییر اومده این صد هزار اون۲ هزاره اون دوی ولی در واقعیت نه در واقعیت 100 هزار من پ صد هزاره ولی این نقاه داره من ازش دو هزار میگیرم دیگه درش رووا هست هزار این درش دقت بشه. مسئله بعد اینه که اگر واقعا ارزش پول به خاطر خود کاغذ می بود اون موقع نباید فرقی بین دلار و ریال ایرانی می بود اتفقا ده هزار تون ایرانی خیلی بزرگتره از یک درهم کشور فلان اون وزنش کاغذش کوچکتره. پس به خاطر ارزش ذات کاغذ نیست به خاطر چیزی دیگر است موقعی که به خاطر چیز دیگر هست ما باید طبق ارزشش برخورد برخورداشته باشیم طبق ارزشش نه طبق اسمش و دلیل دیگهی که ما میگیم پول کاغذی واقعاً دینار و درهم نیست اینه که دینار و درهم اولا ارزش ذاتی داشتن دومن که کاغذ اینو نداره دومن اگر واقعا پول ما دینار و درهم میبود سرمایه یک شخص خود دینار و درهم میبود خیلی متفاوت بود با اینکه پول کاغذیه موقعی که یک انسانی میاد کار میکنه مزدش دینار و درهم باشه موزش اون پولی باشه که از جنس طلا و نقره هست دیگه قدرت های اقتصادی نمیتونن اون ضربه رو بهش بزنند که روی کاغذ الان بهش میزنند کاغذی که از نصف روز تا بعد ظهرش کلی عرصش میره بالا و پایین ولی طلا و نقره اصلا این حالت نداره پس در این مورد دقت بشه که آیا واقعا میشه پول کاغذی رو از طلا و درهم پیغمبر علیه السلام و سلام قیاس گرفت؟ یا نه میگیم اگر واقعا سند و حواله اون هست پس خب هر روز به روز رسانی بشه و طبق ارزشش تو بازار محاسبه بشه اگر که نیست خب اون موقع در کاغذ نمیشه ربایی رو ثابت کرد این شد از نظر پس تا این قسمت از کتاب خوندیم و الالت الثانیه فی و شعیر لکونهیم مطمئون جنسا الالت دو روم در اون چهار چیز دیگر هست یعنی گندوم و جو خورما و نمک میگه الک در اونا تبقی مذهب امام شفی رحمت الله متعون بودنه بودن و تبقی مذهب امام مالک رحمت الله علیه قوت و ادخار بودنه و طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وزن و کیل بودنه و ما اوکل او شرب ففيه ربا طبق نظر امام شافعی که علت در اون چهار چیزی که در حدیث اومدن خوردنی بودن میدونه هر چیزی که خوردنی و نوشیدنی باشه درش ربا پیش میاد در پرتقال پیش میاد در هر چیزی که خوردنی باشه نوشیدنی باشه در شرایط با پیش میاد باید متماسل فروخته بیشند، بله. و دست به دست. مگر اینکه جنسشون فرق کرده باشه که تفاظ تفازول موردي نداره. پس میگه کل ما او کلا او شوری به ربا. هر چیزی که خورده و نوشه درش ربا پیش میاد. چرا؟ چون علت حرام بودن و در اون چند چیز خوردنی بودن میدونن پس هر چیزی که خوردنی باشه مسلم اک اما طبق مذهب امام ابو حنیفه نومان مثلا در هر چیزی خوردنی ربا پیش نمیاد. زمانی درش ربا پیش میاد که کلی و وزنی باشه. اگر کلی و وزنی فروخته میشد درش رباب پیش میاد اگر نه دونه فروخته میشد درش رباب پیش نمیاد مثلا زمانی که عرف بگونهای بوده که تخم مرغ فروخته می فروخته میشده شما میتونید یک تخم مرغ رو در مقابل دو تخم مرغ ولی اگر وزنی باشه نه یک کیلو رو در مقابل دو کیلو نمیشه این بستگی به عرف داره که کهل بودن و وزن بودن چیزا رو مشخص میکنه مگر اون چیزایی که در زبان رسول گرامی اسلام کلی و وزنی بودند که اونا برمون کهلی و وزنی بودند باقی میمونند فلا يجوز بیال جنس الواحد منه الا متماثلا یدن بیاد جائز نیست که فروخته بشه یک جنس با هم جنسش مگر متماثل و دست به دست گندم و به گندم نمیتونی بفروشی مگر اینکه وزنشون یکی باشه اندازهشون و یکی دست به دست باشن و یا جوزو با ایجنس به غیره کلبور رو به این متفاضلن لیکن یعنان بیاد و جائزه که شما یکی از اینا رو با جنس دیگه بفروشی متفازل. مثلا یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو جو چون جنسشون فرق کنه ولی باز هم دست به دست باشن یعنی قبض روخ بده ما لا یوکلو من صفر و نحاس و و کتان فلا ربا فی آنچه که خورده مثل روی مثل میشه مثل پنبه و کتان درش ربا پیش نمیاد طبق مذبه امام شافی چون اینا خوردنی نیستن ولی در آهن در نحاس طبق مذهب امام هنیفه ربا پیش میاد چرا؟ چون اینا وزنی هستن و علت ربا رو احناف وزن بودن و کل بودن میدونستند بله ويجوز بق بعضه ببعض متفازلا نقدا ونسيان معاملة ين تشيزك زيك شد خوردنى نيسان تبقى مذهب امام شافى جائزة فروش بعض ببعض دیگر هم متفازلا هم نقدا و هم بوامن تون إن جزء اموال الربابين نیسان تبقى مذهب امام شافى رحمة الله عليه ولا يجوز بق اللحم بالحيوان ولا بق السمسم بالصيرج بالشيرج ولا بيء الجوز واللوز بدهنهما ولا بيء بعضه ببعضه في قشره ويجوز بيء أحدهما بيء أحدهما بالآخري صحيحا ومقشورا جائز نس فروش قوشت بحيوان وفروشي كونجد بدار مقابل روغناش چون كونجد روغن داره ون روغن روغنه عندازشن با هم جور دار نمياد ان فقهاء القديم خيلي داخيه بوداد يعني خيلي الريز جرف و عمیق بودند چیزی که خیلی من خوشم میاد از فقه های قدیم و تا معاصر مطالب کنه البته هر فقه خوبی خودشو داره اون جرف نگریش در معاملات بوده عبادت که داستانش متفاوت است اونا نه با نستامتند ولی در معاملات فقه ها واقعا جرف نگر بودند و وسیع میگه جائز نیست فروش گردو و بادم با روغنشون با و همچنین فروش بعضی از اینا با بعضی دیگر در پوستشون و جایز از فروش یکی از اینا با دیگری مثلا گردو با بادام چه صحیح باشه چه پوست داشته باشه ولا یجوزو با اتمری بر روطبی الا فی الارایه جایز نیست فروش خرما با رتب مگر در ارایه چرا چون موقعی که رتب تبدیلی به خورمه میشه و کم میکنه مگر در ارایا که اون یک استثناء هست که تا پن وسق جایز میشه ولی به اون رتبی به رتب فروش رتب به رتب جایز نیست ولی به الفواکهی و لحمن به جنسی بجنس ها رتبا حتی بس و جایز نیست فروش میوجات و گوشت ها به جنسشون زمانی که تر هستند اما زمانی که خوشک دیگه مشکل پیش نمیاد چون دیگه وزن از اون به بعد کم نمیکنند. ولا به او ما دخلت و النار و بجنسی همچنین جائز نیست اون چه که آتش زیر آتش گذاشته شده است با جنسش چون اونی که آتش اومده زیرش تأثیر آتش در همه چیز متفاوته ممکنی تبخیر در یکی بیشتر شده باشه در یکی کمتر شده باشه مثل مثلا گوشت کباب شده باقشت كباب ديگه كن تأثيراتش درين كباب و اون كباب متفاوته مثلا وجائز ولا يجوز بأو الحنطة بالدقيق إلا أن يختلف جنسات و جائز نيس فروشه گندم با عرد مگرين كه جنس شل فرمه يعني شون ميتوني گندمو بفروشي با عرد جو چون نجد تفاضل موريد نداره ولا يجوز بأو الزبد باللبن إلا أن يكون مخير بن و نيس فروشه سرشیر کره با خود شیر مگر اینکه مخیز باشه این اون شیری باشه که روغنش گرفته شده و لبه اومخولیت به غیری سنفن به سن و جایز نیست اون چیزی که مخلوط شده با چیز دیگر سنف به سنف شما اون چیزی رو که مخلوط شده چرا؟ چون درصد قاتی شدن با هم فرق داره؟ میبینی این چیزی که مخلوط شده مثلا معجون درصد فلان چیزی که باش قاطی شده در این بیشتره در کمتره ولی ایجوزو به الخبز بالخبز جائز نیست فروش نان به نان بله اینا درشون آتش اومده و, و که بحسر كان اصله الكيل فلا يجوز بئو بعضه ببعض بكيل، وأنت كأصلش كيل بودا نس بعضش ببعض دجال مجر كيل بكيل، وما كان أصله الوزن فلا يجوز بئو بعضه إلا وزنن وانتك فروش ببعض إلا وزنًا بوزن، وأنت كأصلش وزني بودا جائز نس فروشة بعضش ببعض مجر وزن بوزن. هذا ما ظهر لي والله أعلم. أميدورم سأي صدري باشدوا مسألة. علمی بررسی شود؟